در خانه که رسید سر برگرداند و هر چه فکر کرد همه راه را از کجا و چطور آمده است یادش نیامد فقط می دید که رسیده است در را باز کرد بی سر و صدا بی آن مثل مثل مردهای دیگر بخواهد حضور خود را اعلام کند به زیر زمین رفت. اتاق با دیوار سیمانی تیر رنگ هیچ تزئینی جز یک عکس خانوادگی نداشت پدر روی صندلی نشسته بود مادر پشت سرش ایستاده بود با همان چادر نماز سفید گلریز و مثل همیشه لاغر آیدین دست چپ ایستاده بود و اورخان دست راست پشت سر همه نصف صورت آیدا هم پیدا بود که در چادر سیاه خودش را جمع و جور کرده بود و چقدر پشتری ها و پرده را قشنگ میدوخت خوب چی نشان میداد و بعد می گفت دایی آیدین خوب شد از طرف سهراب حرف می زد در اتاق را بست پرده را کشید و یک سیگار آتش زد روی تخت راست کشید و تقلا کرد اول به من و بعد به آیدا فکر کند اما نمی توانست همه با هم می آمدند و با هم دور می شدند ذهنش شلوغ می شد و بعد مثل یک بیابان خوش. هیچ کس آن نبود. بیرون که بود یا وقتی کتاب میخواند، به راحتی میتوانست، به دلخواه یاد هر کس بیفتد. یاد من، آیدا، مادر، و حتی جمشید که در شورابی غرق شده بود و سالهای سال روحش او و مادر و اورهان را آزار داده بود. مادر میگفت، همش خیال میکنم در خانه را میزنند، میترسم وقتی در را باز می کنم ببینم جمشید پشت در ایستاده باشد و بگوید سلام مادر بی زحمت اورهان را صدا کنید. و مادر میگوید اورهان نیست. پس بگویید آیدین بیاید. مادر می گفت می ترسم بیاید سراغ یکی از شماها و من دیگر نتوانم ببینمتان. چون بعضی وقتها مردها به سراغ آدم می و یکی از زنده ها را میبرند. ارهان می گفت، هر وقت آمد، بگو یوسف هست، بیاید ببردش، راحت من کند. مادر گفت، تو را نه آیدین گفت، سنگ به پایی می خورد که بیشتر می گردد، مراقب خودت باش اورهان. بعد احساس کرد شقیقه هاش تیر می کشد و دست هاش دارد می لرزد. یاد آیدا افتاده بود، نمیدانه چرا همه خیال میکند، سحنه ی آتش را دیده است، به وضوح آتش را میدید که از سراسر بدن آیدا شوله میکشید، شب بود، هیچ کس در خیابان نبود، حتی سگها هم نبودند، و فقط صداشان از دور شنیده میشد، سهراب پشت در بسته خانه نشسته بود و نعره میکشید کشید. آیدا می سوخت و می دوید. اما باز به طرف بچه برمیگشت که ببیند توی جوی آب نیفتد یا سک ها پارش نکنند. بعد در خانه باز شد آبادانی بیرون دوید اما خیلی دیر شده بود. آیدا مچاله شده بود. بعد یاد آبادانی افتاد که سیاه پوش و گریان، با آن موهای جولیده و سر و وضع پریشان دنبال جنازه به اردبیل آمده بود و از ترس جرأت نمیکرد آفتابی شود و بعد بچه‌اش سهراب را برداشت و به آمریکا رفت یک سال بعد در نامهای از پدر مادر آیدین و اورهان خواهی کرده بود و نوشته بود که دین آیدا را به یادگارش سهراب میپردازد. همه ی هم مقمش را صرف سهراب می کند و دیگر هرگز به ایران باز نمیگردد. اما هیچ کس آخر نفهمید که چه بلایی سر آمده بود که ناچار شده بود خود را بسوزاند. حتی روزنامه ها هم چیزی ننوشتند. سیگار دیگری روشن کرد. چند لحظه بعد در اتاق باز شد و مادر به درون آمد. گفت. چرا نمی آیی بالا؟ آیدین گفت حالم خوش نیست مادر گفت چی شده؟ باز با اورهان حرفتان شده؟ آیدین گفت نه مادر حوصله ندارم مادر گفت چی شده به من بگو آیدین گفت یاد آیدا افتادم مادر گفت آیدا آیدا یه من آیدین پرسید چرا اینجور شد؟ مادر گفت کاش میدانستم کاش دردش را میدانستم اما هرچه بود زیر سر آبادانی بود این اواخر آبشان به یک جوی نمی رفت. چند لحظه هر دو سکوت کردند آیدین به سخت خیره شده بود و تطابق چشمهاش را از دست داده بود مادر دم پله نشست گفت این اتاق خیلی دلگیر است، آدم سالم هم مریض می شود، چرا نمیخواهی برگردی به اتاق سابق؟ آیدین گفت، من از آنجا بدم می آید. مادر گفت، می اتاق بزرگی را برات مرتب کنم؟ آیدین گفت، نه، نه مادر، من همینجا می مانم. مادر گفت، پس چرا اینجوری شده ای؟ آیدین میخواست تنها باشد و یاد من بیفتد. از خودش عصبانی بود که نمیتوانست بیرون از خانه جایی دوام بیاورد گفت چجوری جوری شده مادر و همراه نفسش ناله کرد مادر گفت صبح تا شب داری فکر میکنی. همش توی خودت فرو میروی. من نباید بدانم تو به چی فکر میکنی؟ می‌خوای بنویسم به دایی ناصرت که سر و سامانی بگیری این گفت تو را به خدا مادر دیگر حرفش را نزن مادر گفت داری خودت را تباه می کنی. آیدین گفت حالا تصمیم ندارم و به سیگارش پک محکمی زد و تحسیگارش را در جاسیگاری روی سینه له کرد. مادر گفت لابد می خواهی تا آخر عمر به سورمه فکر کنی و به حساب خودت به پاش چینی. آیدین ترسید که اگر بگوید آره مادر بخواهد نصیحتش کند و بگوید به مرده ها فکر نکن. برای همین سکوت کرد و داشت، در ذهن شلوغش دنبال من میگشت. وقتی مادر حرف میزد او می یاد من بیفتد. یاد راه رفتن و تاب خوردنم. یاد آن شب بارانی و یاد عید نوروز که من سبز سبز کرده بودم. گفت، شما که عید نمی گرفتید. و من گفتم، از امسال می گیریم. عیدی هم یادتان نرود. گفت چه خواهید؟ گفتم باز هم مرا ببوسید بوسید گفتم آلبالو و خندیدم مادر راه افتاده بود دو سه قدم میرفت به گوشه اتاق می میرسید و کتابهای درحم و برهم آنجا را میدید برمیگشت نگاهی به آیدین میانداخت و باز میرفت و میآمد گفت هیچ میدانی وقتی اینجوری خودت را عذاب میدهی روح او را هم معذب می کنی؟ آیدین گفت، سورم که زیر خاک نیست مادر مادر گفت، من نمیگویم فراموشش کن، نه دوستش داشته باش، به یادش باش، ولی یک خورده هم به خودت فکر کن، ببین آمد لب تخت نشست، اورهان آدم دندان گرد و پول است. مثل بابای خدا بیامرزد فقط به کسب و کار فکر میکند به تخمهاش فکر میکند از خدا میخواهد که تو نباشی و او همه زندگی را بالا بکشد ولی من میخواهم از حالا زندگیتان شسته و روفته باشد نه به تو ظلم شود نه به اورهان اما تو زندگی را به بازی گرفته ای اگر من سرم را زمین بگذارم با این حال خراب نمیدانم چی به سرت میآید این همه سال به خاطر تو با پدرت در افتادم حالا هم باید از دست آن نکبت زج بکشم چرا چون نمیخی از حقت دفاع کنی تا کوچکترین حرفی میشنوی خودت را کنار میکشی آخر چرا آیدین با سیگاری دیگر روشن کرد و همچنان به سخت خیره ماند من در آن همه جمعیت گم بودم. همه یادم گم بودند. ورچه فکر می کرد یادش نمی آمد که من به زبان ارمنی چی بهش گفته بودم. دود اتاق را برداشته بود. مادر پرده را کنار زد. در را باز کرد. گفت به خاطر من سعی کن به گذشته ها فکر نکنی. شد نشست و بیرون را نگاه کرد. کللا روی شاخهای های قطع شده یک کاج چونن بی حرکت نشسته بودند که زمان به سالها قبل برمیگشت و یک جایی خشک میشد. آیدین، چهارده سالش بود با کیف قهوه ای رنگ مدرش روی پله های راه روی پایین نشسته بود و داشت نان و یک چیزی میخورد. بعد به حجر رفت پدر نمیپرسید که چطور درس میخواند و چه وقت؟ اما میدانست که خوب میخواند و تمام فکرش این بود که او را به حجره و کسب علاقمند کند گفته بود همیشه به کاری مشغول باشید بدن باید عادت کند وقتهای تعطیل آیدین در حجره کار میکرد زمین میشست سوراخ موش ها را با گچ و سیمان بند میکرد علم قیمت ها را مرتب میکرد و یا مشتری راه میانداخت و اورهان زیر میز پدر با تخت و میخ جعبه و صندلی کوچولو درست میکرد پدر همگاهی خم میشد و میدید که دارد زیر میز دو تکه تخته را به هم میخ میکند گفت چه میکنی پسر؟ اورهان گفت لانه درست میکنم پدر گفت برای کی؟ اورهان گفت برای پرنده ها پدر گفت چرا کار نمیکنی پسر؟ اورهان چند چک کشکو و گفت پس این کار نیست؟ پدر خندید مشتش را پر پسته کرد و زیر میز گرفت. اورهان جعبه کوچولوش را جلو برد تا پدر خالی کند. آیدین از آن طرف حجر نگاه میکرد و پدر خوب می دانست که دارد می بیند و همان شب به مادر گفته بود قرور عجیبی دارد. با اینکه خوب کار میکند، خوب درس میخواند اما غرور عجیبی دارد. آدم هوس میکند این غرور را بشکند. مادر گفت: چقدر سیگار میکشی؟ تو که سیگاری نبودی. آیدین گفت: نمیدانم. و آتش زد. سعی کرد یاد آن روز بیفتد که من بگویم اختیار دارید. من کی هستم که به شما یاد بدهم چه بکنید؟ فقط دلم میخواهد شما را آراسته ببینم گفت امشب می خواهم از پدرتان اجازه بگیرم که با شما ازدواج کنم گفتم ما که لایق نیستیم گفت شما تمام زندگی من هستید گفتم ما دو بار عروسی می کنیم یک بار در کلیسا یک بار هم در محضر گفت شما چه گلی را دوست دارید؟ گفتم چطور مگر؟ گفت، دلم میخواهد یک دست گل به شما هدیه بدهم. من همه گلها را دوست داشتم، ترکیب گلها را دوست داشتم. پک محکمی به سیگار زد و توی دلش گفت، هی. و بعد به مادر نگاه کرد. خاص حواسش را چند لحظه به مادر بدهد که چیزی بگوید یا بشنود، اما باز چهره رنگ‌پریده من یادش آمد که مدام حال تهوع داشتم و بعد سیاهی چشم هام بزرگ و بزرگتر شد تا آنجا که تمامی صورتم را پوشاند و در آن سیاهی هیچ چیز به خاطرش نرسید. جز آیدا که او هم تا بیاید خودش را نشان بدهد در شعله مچاله شده بود. سرش را زیر انداخت و باز چشمهام را دید و بعد صورتم را که گل بهی رنگ بود. یا نرمه گوشم را که او مدام با زبان قلقلک می داد و من مور مورم می شد. یک مداد کنت برداشت گفت بگذار خال روی هات را تکرار کنم. خاله سیاه کوچکی طرف راست بالای لبم بود. آیدین یکی هم طرف چپ گذاشت. من دردم گرفت اما چیزی نگفتم. گذاشتم که خوب پر رنگش کند و در آگن نگاه کردم و خندیدم. گفت اصلا خوب نشد. پاکش کن. بیا من پاکش کنم. گفتم حالا بگذار برای بعد. گفت نه من اشتباه کردم. چیزهای قشنگ تکرار نمی شون. گفتم، خواهش میکنم سر به سرم نگذار. گفت، به من اعتماد نداری؟ در همان لحظه تصویری روشن از مادر جلوی چشمش نقش بست که چادر نمازش افتاده بود روی شانهش و بر آخرین پله اتاق زیر نشسته بود. بی آنکه حرف بزند. آخرین پک را به سیگار زد و به ذهنش فشار آورد. من به یادش نیامدم مگر با پارچه سفیدی که رویان جسم به قول او ظریف کشیده شده باشد. یک جسد باد کرده کبود شده، حالا جلو چشمهاش روی موزایک سرد بیمارستان خوابیده بود. گفته بود کاش آدم میتوانست با مرگ مبارزه کند. گفتم چه جوری؟ گفت جوری که نخواهد بمیرد. یک تقلای حسابی. گفتم، ممکن نیست. مرگ هم همیشه یک جور نیست. هر دفعه شکل ای دارد. در ذهنش خواست که من بگویم داری خواب میبینی و من گفتم داری خواب میبینی. تاسیگارش را انداخت و انگوشت هاش را با زبان خیز کرد و دید که مادر دارد نگاهش میکند. گفت، دنیا پوچ و بی ارزش است هیچ ارزشی ندارد گفتم حرفهای خوب بزن دنیا بی ارزش نیست فقط انسانی زندگی کردن خیلی سخت است. گفت: آره و خواست که من بگویم نه دنیا بی ارزش نیست سخت هم نیست داری خواب می بینی. و من گفتم دنیا بی ارزش نیست سخت هم نیست داری خواب میبینی و شمرده شمرده گفتم بعد خندیدم دلش میخواست روی تاب نشسته باشم و بخندم و من هم روی تاب نشستم و خندیدم و باد موهام را به بازی گرفته بود گفتم تاب نمیخوری گفت نه لب حوز نشسته بود لباس یشمی پوشیده بود و هوا مهالود بود چون باران هم میخواست ببارد گفتم ها؟ گفت لاوا مادر هرچه چه می بگوید میگفت و مثل همیشه به صرافت قضا پختن و ظرف شستنش میافتاد و تا میآمد به پدر فکر کند که انگار همین دیروز با آن جسم کوچک از حجر به خانه برمیگشت و با آن پاپاخ سیاه و پالتوی توسی رنگ سنگین سنگین از پله بالا میرفت ناگاه آن اوعبت عجیبان حضور ماندنی در خاطرش محو میشد و در گورستان قدیمی شهر زیر خاک به چند تکه استخوان بدل میگرد. و هر کس که فکر می کرد همین طور بود. یک تصویر پر می کشید و چیز دیگری جاش را می گرفت. حتی صورت رنگ پریده من هم دیگر یک لحظه ثابت نمی مان که او به در ذهنش خوب نگاه کند. پیشترها به یاد هر چیز که میافتاد می توانه ساعتها بهش فکر کند، بسازدش، ویرانش کند و باش حرف بزند. اما در این یک ماهی آخر، به خصوص در این چند روزه، هر چه که میخواست به سرش بیاید، آمده بود. پس به پدر و بعد به بچگی خود فکر کرد که از ایوان طبقه بالاشی جمی زند توی حوض و پدر میخواهد از خانه بیاندازدش بیرون. در ذهنش کودکیان برادر مدول خیالاتیاش را هم دید. و هواپیماهای روسی و چطبازهای آبی پوش بر فراز آسمان نرم نرم میسولیدند شاید به این خاطر که آن بچه ده ساله را به نابودی بکشند. پدر می رفت و باز با لباسی دیگر به سراغش می آمد کاش می شد که همه این چیزها را به مادر بگوید. زندگی همیشه خوردن و خوابیدن نبود چیزهای ظریف و کوچکی هم بود که اون نمیتوانست به مادر بگوید پدر گفت چرا شاگرد اول نشدی آدین گفت خب شاگرد دوم شدم پدر گفت نمیتوانی شاگرد اول بشوی آدین گفت چرا میتوانم پدر گفت بشو داشت برای کمردرد خودش و پادرد بچه ها معجون افلاتون درست میکرد. مغز پسته و فندق و گردو و بادام را با نارگیل میکوبید، در شیر حل میکرد و دو لیوان پیاپی سر میکشید. انگار همین دیروز بود. گفت بیایید بخورید. یک لیوان به آیدین، یک لیوان به آیدا، یک لیوان هم به اورهان. و اورهان که تو بغله پدر نشسته بود همانجا شاشید پدر گفت این بچه به کی رفته؟ عصبانی شد پاهاش را بیرون آب کشید و شلوارش را عوض کرد و دوباره سر جاش نشست مادر با چرخ خیاتی داشت برای بچه ها شلوار می دوخت و ایدام مشق می نوشت. مادر گفت اخلاقش که به تو رفته ولی شاشیدنش نمی داند. پدر گفت خیلی خوب، حالا پاشو عوضش کن، بچه نرخر شیخ ساده هنوز هم توی شلوارش. بخاری ای آن گوش هور هور می کرد و دودش میرفت آسمان. پدر با ایدین گفت، اگر شاگرد اول بشوی برات دوچرخه می خرم. آن سال شب و روز درس خواند. عکسش را از طرف فرخنگ در روزنامهها چاپ کردند. پدر عکس را زیر شیشه میزش گذاشته بود و به مشتریهاش نشان میداد آیدین اورخانی میبینی با معدل بیست اما نه آن سال و نه هیچ سال دیگر پدر برای آیدین دوچرخه نخرید